عزیزم به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. برای ما باعث خوشوقتیه که شما در این دوره از بررسی مهمترین کتاب دنیا با ما همراه هستیم. ما بررسی مقدماتی کل کتاب مقدس رو شروع کردیم و کتاب به کتاب تمام کلام خدا رو بررسی می ما بررسی انجیل ها رو به صورت خلاصه به پایان رسوندیم و حالا در طی بررسی هامون به پنجمین کتاب عهد جدید میرسیم که به اون اعمال رسولان میگیم. دعای ما اینه که درس امروز شما رو در رشد ایمانتون تشویق کنه. حالا با هم به درس امروز معلممون گوش میکنیم. کتاب اعمال رسولان بلا فاصله بعد از اناجیل با مأموریت بزرگ عیسی شروع میشه. عیسی پاسخ داد برای شما لزومی ندارد که ها و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود کتاب اعمال کتاب تاریخ اولین نسل از کلیساهای ایسای مسیح و رابطی بین چهار انجیل و رسالات پولس است. اگر به خاطر کتاب اعمال نبود، وقتی به رسالات رومیان و قورنتیان و افسوسیان می رسیدیم، تعجب می کردیم که این پولس کی هست و این کسانی که داره براشون نامه می نویسه کی هستند و واقعا سردرگم می شدیم. اگر کتاب اعمال نبود، واقعا گسیختگی عظیمی در عهد جدید به وجود میومد اومد. نظریه ای هست که بر طبق اون، پنج کتاب اول عهد جدید کتابهای تاریخی هستند. چون چهار کتاب اول که اناجیل هستند، اگرچه زندگی نامه های الهامی عیسی هستند، در عین حال وقایه تاریخی نیست هستند. کتاب اعمال به عنوان کتاب تاریخ در عهد جدید به حساب اومده و به این ترتیب از زندگی نامه های الهامی متا، مرقس، لوقا و یوحنا جدا شده. کتاب اعمال این طور شروع میشه. شه. عزیزم، من در اولین نامه خود درباره تمام اعمال و تعالیم ایسا از ابتدا تا روزی که به وسیله روح القدس دستورات لازم را به رسولان برگزیده خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم وقتی این آیات نخست کتاب اعمال رو میخونید براتون مشخص میشه که نویسنده کتاب اعمال همون کسیه که سومین انجیل یا انجیل لغا رو نوشته این نویسنده کتاب اعمال رو خطاب به همون کسی مینویسه نویسه که سوامین انجیل رو به او نوشته بود اسم این مرد توفیلوس بود که معنی اسم او عاشق خدا هست این مرد از نظر لوقا اونقدر ارزش داشته که احساس کرده باید دو کتاب خاص رو خطاب به او بنویسه من همیشه تحت تاثیر این واقعیت بودم که لوغا این پزشک عزیز برای یک مردی اونقدر اهمیت قائل بوده که سومین انجیل رو خطاب به او می نویسه. او کل انجیل خطاب به اون مرد نوشته تا اینکه او رو در چیزهایی که خودش تعلیم یافته بود تعلیم بده. لغا به عنوان یک مورخ دقیق گفته که درک کاملی از همه این چیزها داشته. هدف او از نوشتن سومین انجیل این بوده که میخواسته برای توفیلوس درکی از وقایع تاریخی بده که او اونها رو به عنوان انجیل لغا ثبت کرده. و حالا او داره کتاب اعمال رو خطاب به همین مرد می نویزه. و به این وسیله او ادامه انجیل لوقا رو برشته یه تحریر در میاره. در کتاب اول لوقا میگه من کارهایی رو که عیسی شروع به انجام و تعلیمش کرده پوشش دادم و تا زمان صعود او ادامه دادم. به این تاکید توجه کنید، عیسی شروع به تعلیم و انجام کارهای خاصی کرده. پس او اول کننده کار بوده و بعد از اون معلم. اما او چیزهای خاصی رو در انجیل لوقا شروع کرده. حالا در کتاب اعمال، به توفیلوس و به ما میگه که چطور بعد از سعود عیسی کارهای عظیم او ادامه پیدا کرد. از این رو میتونیم کتاب اعمال رو با این عنوان بخونیم. اعمال مسیح قیام کرده. عنوان اعمال رسولان از طرف به این کتاب داده نشده. خب اگر اولین آیه کتاب اعمال رو مد نظر قرار بدید، خواهید فهمید که بهترین عنوان برای کتاب اعمال میتونه اعمال مسیح قیام کرده توسط رسولان باشه در آیه نخست این کتاب تاریخ عهد جدید لغا میگه که در انجیلش داستانهای دقیق تاریخی از تمام کارهایی که ایسا شروع کرده به ما داده تا روزی که به آسمان سعود کرده اما بعد از سعودش لغا میگه عیسی به تعلیم و انجام کارها و تعالیمش توسط رسولان ادامه داد بنابراین عنوان مناسب برای این کتاب میتونه اعمال مسیح قیام کرده توسط رسولان باشه. این مهمه که بسیاری از مردم معتقدند که کتاب اعمال پایان نداره. وقتی کتاب اعمال رو مطالعه می کنیم، این شاید اولین چیزی باشه که من مایلم شما رو تشویق کنم که مد نظر قرار بدیم کتاب اعمال فقط متوقف میشه. اون تموم نمیشه وقتی به باب 28 می رسید پولس رسول بالاخره وارد روم شده. او دائم در این فکر بوده که به روم برسه و امتحانات پی در پی رو پشت سر گذاشته. به این فکر کنید که وقتی او وارد روم میشه قرار هست که در دادگاه قیصر محاکمه بشه. وقتی میخونید به این نتیجه میرسید که در روم پولس یک امتحان بزرگ در پیش رو خواهد داشت. چون که کتاب طوری طراحی شده که در اونجا به اوج خودش برسه. اما وقتی پولس به روم میرسه کتاب متوقف میشه توجیهات احتمالی برای این وجود داره. شاید به این دلیل بوده که لغا دستگیر شده و فرصت تمام کردن کتاب رو پیدا نکرده. برخی بر این باورند که شاید دلیلش این باشه که مشیت الهی این بوده که کتاب به پایان نرسه. چون که این کتاب تاریخ کلیساهای مسیح است و من و شما هنوز داریم این تاریخ رو می نویسیم. می تاریخ معاصل کلیساهای امروزی رو اعمال 29 در نظر بگیرید. من تقریبا مایلم که کل کتاب اعمال رو به صورت یک معموریت قلمداد داد کنم وقتی کتاب اعمال رو میخونیم بذارید چیزهایی رو بگم که باید مد نظر قرار بدیم. اولا از اونجایی که کتاب اعمال یک کتاب تاریخ است شما میتونید همونطور به این کتاب بپردازید که به دوازده کتاب تاریخ در عهد قدیم نگاه کردید. پولس رسول به ما گفته که چطور به داستانهای تاریخی در کتاب مقدس بپردازیم. او گفته تمامی این امور بر آنان واقع شد و نوشته شد تا سرمشقی باشد و یا عبرتی برای من و شما و کسانی که تا پایان جهان خواهند آمد. تمامی این چیزهایی که در این داستانهای تاریخی کتاب مقدس پیش آمده خواه در عهد قدیم و خواه در عهد جدید به دو دلیل واقع شد که یا سرمشق باشند و یا عبرت وقتی داستانهای تاریخی رو در کتاب مقدس می خونید همیشه به دنبال سرمشق‌ها و ها باشید. به نظر میرسه که در عهد قدیم ها بیشتر از سرمشق‌ها هستند. در عهد جدید من فکر می‌کنم سرمشق‌ها بیشتر از ها هستند. شما میتونید هر دو مورد رو به فراوانی در کتاب مقدس ببینید. وقتی این کتاب تاریخ رو مطالعه می‌کنیم، چیز دیگه ای که باید مد نظر قرار بدیم، هدفیه که به کلیسا داده شده. این تقریباً اولین چیزیه که وقتی کتاب اعمال رو میخونید با اون مواجه میشید. ما بعضی از این آیات رو در شروع معرفی این کتاب میخونیم. وقتی عیسی به پایان زمان خودش با شاگردان رسید، در هر چهار انجیل او زمان خودش رو با چیزی به پایان برد که ما بهش معموریت بزرگ میگید. شما میتونید معموریت بزرگ رو در انتهای چهار انجیل پیدا کنید. در انجیل متا میگه. تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است، پس رفته همه ها را شاگرد سازی و ایشان را به اسم پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کرده ام حفظ کنند و اینک من هر روز تا انقضای عالم همراه شما می باشم. یادتونه که وقتی بعضی از رسولان ایسا را دیدن، اونها یک ملاقات عملگرایانه داشتند. بر اساس اولین باب انجیل یوحنا عیسی رو به اونها کرد و پرسید چه میخواهید؟ اونها جواب دادند "استاد، کجا زندگی میکنی؟ یعنی وقتی طوفان زندگی میاد، آیا تعالیم تو کار میکنه؟ عیسی گفت: "بیایید و ببینید." ما میخونیم که اونها رفتند و دیدند که عیسی کجا زندگی میکنه و با او زندگی کردند. طبق چیزی که از نوشته ها برمیاد میبینیم که اونها همه نه تنها با او زندگی کردند، بلکه به خاطر چیزی که رفته بودند و دیده بودند و به خاطر تعهدی که به او داده بودند برای او زندگی کردند و برای او مردند. وقتی اونها تصمیم گرفتند که بیان و ببینند او کجا زندگی میکنه سه سال با او زندگی کردند. عیسی نه تنها تعالیم زیادی به اونها داد بلکه به اونها فرمان داد که چیزهای زیادی را ملاحظه کنند. در پایان سه سال زندگی با اونها، او گفت حالا بروید و شاگرد بسازید اونها رو تعمید بدید و تمام چیزهایی رو که من به شما تعلیم دادم و فرمان دادم که ملاحظه کنید و اونها یاد بدید. کتاب تاریخ عهد جدید به همون ترتیبی شروع میشه که چهار انجیل خاتمه یافتند. یعنی با این مأموریت بزرگ شروع میشه. ما میدونیم که این مأموریت عیسی بود. عیسی فرمانهای زیادی داد و ما این یکی رو فرمان بزرگ او یا مأموریت بزرگ او میگیم. کتاب اعمال یکی از بزرگترین مثال این واقعیت هست که این معموریت معموریت بزرگ عیسی بود. کتاب اعمال دقیقاً نحوه عمل رسولان رو ثبت کرده. اونها نزد تمامی ملت ها میرند و وقتی میرند شاگرد میسازند، اونها را تعمید میدن و اون شاگردان رو تعلیم میدن. عملاً وقتی شما دستور زبان جملاتی که از معموریت بزرگ صحبت کرده رو مطالعه کنید، متوجه میشید که یک جمله امری، یا یک فرمان وجود داره. فعل امری و یا فرمان شاگرد بسازی. بعد چهار قسمت در اون بزرگ وجود داره. اون قسمت ها عبارت هند از رفتن، موعظه کردن، تعمید دادن، تعلیم دادن. پس اظهار عملی ماموریت بزرگ میتونه چیزی مثل این باشه. رفتن، شاگرد ساختن، موعظه کردن و تعمید دادن و تعلیم دادن. در کتاب اعمال این چیزیه که دقیقا اتفاق میافته رسولان میرند شاگرد میسازند و تعمید میدن و تعلیم میدن اما هدف اصلی و فرمانی که به کلیساها داده شده اینه که شاگرد بسازی گفته شده که معموریت بزرگ وظیفه و معموریت اصلی کلیسا هست و مانند هر تشکیلات دیگری کلیسا باید به وظیفه خودش عمل کنه وگرنه میتونه ضعیف بشه و از کار بیفته وقتی این تاریخ کلیسا رو میخونید ملاحظه کنید که ای که به عهده کلیسا محول شده مأموریت بزرگ است همینطور وقتی کتاب اعمال رو میخونید ملاحظه کنید که چه وعده‌ای به کلیسا داده شده در باب اول کتاب اعمال لغا به ما میگه که عیسی به رسولان قبل از اینکه به آسمان صعود کنه فرمانی داده اون فرمان‌ها جمعی بودند بیش از یک فرمان وجود داشت به علاوه بر مأموریت بزرگ عیسی این فرمان‌ها رو هم به اونها داد منتظر باشید منتظر وعده پدر باشید چینی ها میگن یک سفر هزاران کیلومتری با قدم اول شروع میشه. عیسی به قدرت روح القدس به عنوان وعده پدر اشاره کرده. در حالی که داشت دستورات حرکت رو به اونها میداد، با اونها گفت که تا وقتی که روح القدس بر شما بیاد، هیچ قدمی بر ندارید. منتظر باشید تا وعده روح القدس تحقق پیدا کنه. اینجا شما تصویری زیبا از چیزی رو دارید. کتاب مقدس چیزهای زیادی در مورد انتظار برای خداوند به ما گفته. ما در عهد قدیم میبینیم که میگه منتظر خداوند باشید. من فکر میکنم منتظر شدن بیش از هر چیز دیگری ایمان میتلبه، مخصوصا اگر مثل من باشید. من وقتی تصمیم میگیرم چیزی رو درخواست کنم، اونو از دیروزش میخوام و به روش خودم میخوام. من اصلا دوست ندارم منتظر بشم. لازمه انتظار ایمان هست. اما زمانهایی هست که خدا به ما میگه صبر کن. اینجا یکی از متنهای مربوط به انتظار در عهد قدیم هست که مورد علاقه منه. ای اسرائیل پس چرا شکایت میکنی و میگویی که خداوند از مصیبت‌های تو آگاه نیست؟ آیا توجهی به بیعدالتی هایی که متحمل میشوی ندارد؟ آیا نمیدانید؟ آیا نشنیدهید خداوند خدای جاودان است؟ او تمام جهان را آفریده و هیچ وقت خسته یا فرسوده نخواهد شد هیچ کسی افکار او را درک نمی کند او به افراد ضعیف و خسته نیرو می بخشد حتی جوانان نیروی خود را از دست می دهند و مردان جوان از خستگی می افتند. اما کسانی که برای کمک به خداوند توکل می کنند نیروی تازه می یابند آنها مثل اقاب پرواز خواهند کرد و از دویدن خسته و از راه رفتن فرسوده نخواهند شد این متن آشنا در باب چهلم اشعیا هست. اشعیا در باب چهل وقتی خدا به قومش میگه منتظر باشند، میگه مانند اقابهایی منتظر باشند که بر بالهایشان سوارند. او حقیقت ارزشمندی رو درباره ایمان با اونها و با ما در میون میذاره. زمانهایی هست که اقابها پرواز نمی کنن. یک مدت مدتهای طولانی در کنار لانش میسته، شاید ساعتها. و منتظر میشه تا جریان باد موافق باشه عقاب ها پرندگان جذابی هستند اونها در مورد جریان باد آگاهی دارن. وقتی عقاب بدونه که جریان باد به حد کافی قوی هست اون موقع از آشیانهش شیزجه میزنه و بالهای زیباش رو باز میکنه و سوار بر باد میشه بعد مانند یک گلایدر اوج میگیره با آگاهی از این حقیقت در مورد اقاب، و چیزی که خدا ما رو در اشعیا چهل به انجامش ترغیب می کنه باب اول اعمال رو بخونید و وعده ای رو که خدا به کلیسا داده ملاحظه کنید همینطور به فرمانی که به کلیسا داده شده که منتظر تحقق وعده بمونن توجه کنید کلیسا رو به عنوان اقابی که در کنار آشیانش نشسته تصور کنید که منتظر باد روح القدس هست که در روز پنتیکاس خواهد وزید میخوام شما رو به چالش بکشم. وقتی درگیر خدماتی برای خداوند هستید آیا منتظر حضور او میمونید که بیاد و شما را رو با روحش تدهین و تقویت کنه؟ یا فقط با قوت خودتون میرید و از مهارتها و قدرتهای خودتون به جای مسحه روح القدس استفاده میکنید. اگر سعیتون بر اینه که کار خداوند رو با قوت جسمی خودتون به انجام برسونید یعنی طبیعت انسانی بدون مساعدت خدا اون موقع کتاب اعمال پیغامی از طرف خدا برای شما هست پیغامینه بدون مساعدت خدا شما قادر به انجام کار خدا نیستی به این دلیل که ما باید منتظر قوت روح القدس باشیم بذارید باب اول کتاب اعمال به شما بگی که منتظر خداوند باشید قبل از اینکه به کار خداوند بپردازید کتاب اعمال تاریخچه اولین نسل از کلیساهای ایسای مسیحه وقتی روز پنتیکاس میاد به اقابی فکر کنید که از آشیانه شیرجه زده و اون بالهای باشکوهش رو باز کرده و سوار بر باد روح القدس شده. این جوهر اعمال باب دو هست. وقتی اعمال باب دو رو مطالعه می کنید به قدرتی که به کلیسا عطا شده توجه کنید. روز پنتیکاس یکی از مهمترین روزها در تاریخ کلیسا و در تاریخ قوم خدا هست. به اعتقاد من وقایع بزرگی وجود دارند که اگر کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشف بررسی کنید ملاحظه خواهید کرد که یکی از اونها آفرینش هست، دیگری تجسم هست، یعنی جسم پوشیدن خدا وقتی که خدا انسان میشه و اینجا واقعه دیگری هست که باید به همراه وقایه بزرگ دیگر مورد ملاحظه قرار بگیره واقعه پنتیکاست، آمدن روح القدس نمیتونید کار خدا را با قوت انسانی انجام بدید برای اینکه بتونید کار خدا رو پیش ببرید باید قدرت خدا رو داشته باشید باید روح خدا رو داشته باشید شما به راحتی نمیتونید کار خدا رو با قوت خودتون انجام بدید وقتی به اهداف کلیسا نگاه میکنید می‌فهمید که تحقق اون اهداف بدون پنتیکاست امکان پذیر نیست کلیسا عملاً نمیتونه اهداف خودش رو تحقق ببخشه تا وقتی که قدرت روح القدس بر کلیسا قرار بگیره در 1973 شبان دیک وودوارد با یکی از استادان پیرش دکتر جی برنون مکی، به حدود ده کشور سفر کردند. اونها خروج قوم خدا رو از مصر به طرف سرزمینی که امروزه به اون سرزمین مقدس میگیم مطالعه کردند. اونها گسترش کلیساها رو از سرزمین مقدس به طرف آسیای صغیر تا اطراف ترکیه جایی که افسوس قرار داره مطالعه کردند. بعد انتشار کلیسه ها رو در یونان و اروپا مطالعه کردند. اونها این رو مورد مطالعه قرار دادند که چطور گروه کوچکی از مردم که در زمان صعود عیسی فقط تعداد اندکی بودند، دوام آوردند و امپراتوری بزرگ روم رو تحت تأثیر قرار دادند. و بعد این رو مورد مطالعه قرار دادند که چطور اون گروه کوچک توانستند در فرهنگ یونانی یهودی زنده بمونند. شما باید به این نتیجه برسید آن کلیساها نمیتونستند بدون عطایای روح القدس در اون دو امپراتوری بزرگ روم و یونان دوام بیارند. هیچ امکانی وجود نداشت که اونها بتونند بدون عطایای روح القدس دوام بیارند. تاریخ کلیسا به ما میگه که کلیساهای اولیه عطایای روح القدس رو داشتند. وقتی کتاب اعمال رو مطالعه میکنید بعد از اهدافی که به کلیسا سپرده شده و وعده هایی که به کلیسا داده شده به قوتی که به کلیساها داده شده توجه کنید چون بدون درک قدرت پنتیکاست امکان نداره که بتونید اهداف کلیسا رو تحقق ببخشید و معموریت بزرگ کلیسا رو به انجام برسونید وقتی شما قصد دارید شاگردی برای عیسی مسیح بسازید بدون داشتن پنتیکاستی شخصی یعنی رابطه ای با عیسی مسیح قیام کرده کوشش شما بیهوده خواهد بود امروز شما بدون پنتیکاستی شخصی نمیتونید اهداف کلیسا رو تحقق ببخشید همونطور که کلیساهای اولیه در دو هزار سال پیش بدون روز بزرگ پنتیکاست نمیتونستند. ما در جلسه بعدی از نزدیک به روز پنتیکاست نگاه خواهیم کرد چیز دیگری که باید در موقع خواندن کتاب اعمال رسولان ملاحظه کنید نحوه اجرای کارها توسط کلیسا هست نحوه انجام کارها توسط کلیساهای اولیه دنیای اون روز رو به حیرت واداشت. داشت. رهبران مذهبی و امپراتوری غیریهودی یهودی روم نتوانستند عملکرد کلیساهای اون روز رو نادیده بگیرند. اونها به سادگی نمیتونستند نحوه عملکرد این افراد رو توضیح بدن. اگر در بررسی انجیل با ما همراه بودید، تاکید تعالیم عیسی در موعظه سر در متا 21 رو به خاطر میارید. عیسی گفت چیزی که اهمیت داره حرف زدن نیست بلکه نحوه عمل کردنه مهم چیزی نیست که شما میگید بلکه کاری هست که انجام میدید عیسی این رو به رسولان تعلیم داده بود این دقیقا در راستای چیزی بود که رسولان یاد گرفته بودند در تاریخ کلیسا چیزی که باعث حیرت دنیا در مورد این افراد شد نحوه عمل اونها بود اونها نتوانستند به راحتی اعمال اونها رو انکار کنند وقتی این کتاب الهامی تاریخ کلیسا رو می چیزهای زیادی هستند که وقتی اعمال کلیسا رو ملاحظه می‌کنید، باید مد نظر قرار بدید. یکی از چیزهایی که باید ملاحظه کنید، موعظه رسولان هست. موعظه‌های بزرگی در کتاب اعمال رسولان ثبت شده. موعظه بزرگ در روز پنتیکاس شروع میشه. وقتی روز پنتیکاس به کمال میرسه، اون با آیات و معجزات همراه هست. ما تمایل زیادی داریم که بر آیات و عجایب خاصی تمرکز کنیم چون که اونها پدیده های ای هستند و ما معمولا شیفته پدیده های و طبیعه هستیم. اما سرنخ اهدافی رو که کلیسا داره فراموش نکنید. هدفی که به کلیسا داده شده شاگردسازی هست. مهمترین دستاورد روز پنتیکاست، اون سه هزار نفر شاگردی بودند که در این روز ساخته شدند. هرگز این را از نظر دور نکنید هر باری که پتروس موعظه میکنه هزاران نفر تبدیل میشن و این افراد به عنوان شاگردان ثبت نام میشن این وظیفه ای بود که به کلیسا سپرده شده بود این چیزی بود که پنتیکاس رو ضروری میکرد این چیزی بود که کلیسا به اون منظور به وجود آمد انجام این معموریت بزرگ که گفته شاگرد بسازید هدف وجود کلیساها بود وقتی اون افراد تبدیل شدند به موعزه پتروس نگاه کنید برای من خیلی جذابه که وقتی امروزه به دانشگاه میرید شما باید امتحانات مربوطه رو بگذرونید تا موفق به کسب به مدرکی بشید که نشون بده شما یک دانش‌پژوه هستید بعد شما به دانشگاهی میرید و های مردی رو مطالعه میکنید که حتی خواندن و نوشتن نمیدونست شما های مردی به نام پتروس رو میخونید نه پتروز، نه آندریاس، نه یعقوب و نه یوحنا هیچ کدام خواندن و نوشتن نمیدونستن پولوس بعدها تبدیل شد و برخلاف این ماهی گیران بی سواد بود پولس فقیه بزرگی بود یک دانشجوی بزرگ و یک استاد بزرگ اما وقتی تبدیل شد او در نامه خودش شیوه معمول رو کنار میذاره و میگه وقتی در قرنتوس نزد شما اومدم کلمات فریبنده یک مرد حکیم رو به کار نبردم به خاطر تحصیلاتم نبود که توانستم بر شهر قرنتوس تأثیر بگذارم. من نمایشی از روح و قدرت رو به ظهور رسانیدم و عمدن از کلمات فریبنده و حکیمانه استفاده نکردم تا اینکه ایمان شما بر حکمت انسانی بنا نشه. من فقط انجیل ایسای مسیح رو اعلام کردم. سخن و پیام خود را با دلایل مجذوب کننده فلسفی بیان نکردم بلکه آن را رو با روح القدس و قدرت او به ثبوت رسانیدم تا ایمان شما بر قدرت خدا متکی باشه نه بر فلسفه انسانی البته فلسفه و حکمتی هست که آن را در میان اشخاصی که در روح بالغ هستند بیان می‌کنیم. اما آن حکمتی نیست که متعلق به این جهان و یا حکمرانان این جهان باشد حکمرانانی که به سوی نابودی پیش می‌روند. پولس به ما میگه که تحصیلات او نبود که او رو تجهیز کرد تا یک رسول بشه حالا میخوام شما رو به چالش وادارم تا موعزه های رسولان رو در کتاب اعمال ملاحظه کنید موعزه های اونها مس شده بود منظورم اینه که وقتی اونها موعظه میکردند روح القدس بر اونها قرار میگرفت کتاب مقدس به این مس میگه که معنیش مسح نیروبخش و قرار گرفتن روح القدس بر کسی هست که خدمت میکنه وقتی تاریخ موئزه بزرگ رو ملاحظه می کنید، این مفهوم جالب رو درک می کنید. وقتی موئزه کسانی مثل ویتفیلد، ویسلی، جاناتان ادوارد و دی المودی رو مطالعه می کنید، چه چیزی هست که موئزه های اونها رو خاص می این واقعیت که موئزه های اونها توسط روح القدس محس می جاناتان ادوارد در سال 1741 موئزهی کرد به نام گناهکاران در دستان خدای خشمگین اگر امروز اون موعظه رو بخونید شاید تعجب کنید که چرا در هنگام موعظه مردم به نیمکت هاشون چسبیدند و میترسیدند که مبادا به جهنم برند اونها مطلقا بی حرکت مونده بودند و وقتی اون موعظه رو شنیدند به زور از کلیسا خارج شدند این جالبتر میشه وقتی بفهمید که در اواخر موعظه مردم متوجه شدند که جاناتان ادوارد از روی یک دست نوشته ی کوچک موعظه می کرد مردم می گفتند او حتی نمیتونست خوب بخونه و تقریبا اون رو با صدای یک نواخت خوند. پس چرا این همه بر روی مردم تأثیر کرد؟ به این دلیل که روح القدس اون رو معض کرده بود؟ به موعظه های پولست دقت کنید به نظر نمیرسه که هیچ چیز خاصی در موعظه های او باشه؟ پس چرا سه هزار نفر در روز پنتیکاست تبدیل شدند؟ چون پتروس وقتی موعظه میکرد، مسح رو، بخش روح القدس رو بر خودش داشت موعزه های پتروس موعزهی مسیح مهور بود موعزه او موعزهی کتاب مقدسی بود موعزه او موعزهی بشارتی بود منظور اینه که موعزه او بر آراء مردم متمرکز بود یک بار از یک مدیر بازرگانی شنیدم که وقتی او موعزه یک واعظ دورگرد رو شنیده بود می گفت این واعظ مثل یک فروشنده زبردست بود و علاقه شدیدی رو در قلب من برای محصول خودش ایجاد کرد وقتی من کاملا آماده بودم که اونو بخرم و تصمیم بگیرم او هرگز به من نشون نداد که چطور میتونم نظر بدم او هرگز به من نگفت که چطور میتونم چیزی رو که او عرضه میکنه بخرم چطور میتونم اونو بگیرم او منو به حال خود رها کرد پتروس این کار رو نمیکرد و همینطور دیگر رسولان هم این کار رو بشارتی میکردند. به این دلیل که آرای مردم رو بشنوند و وقتی آراع اونها رو میفهمیدند و اونها نشون میدادند که چطور باید نجات پیدا کنند اونها همیشه میگفتند که چطور باید نجات پیدا کرد اونها موعظه هاشون رو با دعوت از مردم به رأی میگذاشتند بیلی گراهام و دیگر مبشران هم بیشتر همین کار رو میکردند موعظه های اونها مسمر ثمر بود این واعظان مشتاق بودند که برای موعظه جانشون رو بدن من فکر می کنم که این جالبه اگر شما بدونید که مردی روز یک یکشنبه موعظه خواهد کرد و اگر موعظه بکنه کشته خواهد شد و با این حال او مایل است که برای اون موعظه بمیره آیا فکر نمی کنید چنین موعظه‌ای ارزش شنیدن داشته باشه این رسولان همیشه آماده بودند که به خاطر موعظه هاشون بمیرند و گاهی میمردند استیفان به خاطر موعظه بزرگی که میکنه کنه کشته میشه این رسولان متهم هستند که تمام اورشلیم رو با تعالیمشون پر کردن. نمیدونم آیا کلیسای شما هم به چنین چیزی متهم هست؟ آیا دلیل کافی برای محکوم کردن شما وجود داره؟ از این نظر موعظه رسولان بسیار بشارتی بود. وقتی کتاب اعمال رو می خونید به مردمی که در کتاب اعمال هستند هم توجه کنید. کلمه کلیسا از کلمه یونانی اکلیسییا گرفته شده که به معنی جمعیت یا فراخوانده شدهگان هستند کسانی که از این دنیا فراخوانده اند که از مسیح قیام کرده پیروی کنند و با او رابطه برقرار کنند این معنی کلمه کلیسا هست آیا وقتی کسی کلمه کلیسا رو استفاده میکنه شما به مناره و برج و ساختمان فکر میکنید در 300 سال اول تاریخ کلیسا هیچ ساختمان کلیسایی وجود نداشته. هیچ ساختمانی در کتاب اعمال وجود نداره. از آنجایی که پیروان اولیه مسیح یهودیان بودند اونها در معبد گرده هم میومدند. اونها در کنیسه ها گرد هم میومدند، در خانه ها گرد هم میومدند اما هیچ ساختمانی فقط به منظور گرده همایی احدااس نکردند. وقتی در سی سال اول تاریخ کلیسا کلمه کلیسا را به کار میبرید، واضح که شما در مورد ساختمانی در یک گوشه از خیابون صحبت نمی کنید. شما در مورد مردم صحبت می کنید. این مفهوم کلیسا هست. به معنای خالص کلمه کلیسا یعنی مردم. شما را تشویق میکن وقتی برای اولین بار کتاب اعمال رو میخونید سعی کنید حداقل با پنجاه نفر آشنا بشید. شما مخصوصاً مشتاق خواهید بود که با پتروس و پولس آشنا بشید. اما به علاوه پتروس و پولس سعی کنید با پنجاه نفر دیگه هم در این کتاب آشنا بشید. چون کتاب اعمال تماماً مربوط به کلیسا است. کتاب اعمال تماماً در مورد مردم هست. افرادی معمولی که به خاطر قدرتی که به اونها عطا شده کارهای العاده انجام میدن. پیغام کتاب اعمال اینه. کتاب اعمال تاریخ اولین نسل کلیسا هست. کتاب اعمال تاریخ کسانی هست که به خاطر مس روح القدس و قوتی که از روح خدا یافته اند کارهای خارقلادهی انجام میدن. همون خدا و همون قدرت امروز هم در دسترس من و شما هست تا کار خدا رو انجام بدیم. امروز به او اعتماد کنید. واقعا العاده است که بدونی ما هم بخشی از باب بیست و نوع اعمال هستیم. از اونجایی که تاریخ کلیسا هنوز در حال نگارش هست ما هم جزی از این تاریخ هستیم. دوستای خوبم متشکریم که دانشجوی وفاداری بودین و در ادامه مطالعه عهد جدید با ما همراه هستید. سرمشقها و عبرتهای زیادی هستند که ما در هفته های آینده یاد خواهیم گرفت. پس ترتیبی بدید که مطمئن بشید که در جلسات آینده دانشگده کوچک کتاب مقدس با ما همراه باشید. تا برنامه بعدی قدرت روح القدس آرامش و سلامتی اون بر شما باشه.